گوینده فرید حامد سلام و درود خدمت دوستان عزیز و یاران همراه با سری های شاهنامه فردوسی ادامه داستان زال در خدمت شما هستیم در برنامه گذشته به اونجا رسیدیم که ماجرای عشق زال و رودابه به گوش محراب پادشاه و فرمان روای کابل رسید بسیار براشفت و نگران شد که مبادا ما این ماجرا مشکل و دردسری برای کشورش و مردمش ایجاد کنه و سیندخت همسر باهوش و زیرک مهراب به اون اطمینان داد که این ماجرا به خیر و خوشی تموم میشه و نگران نباش امشب با هم ادامه این داستان رو پی می‌گیری همراه ما باش این قسمت از جایی شروع میشه که منوچه شاه از ماجرای عشق زال و رودابه با خبر میشه و اکسل عملهایی که در مورد این قضیه داره و اتفاقاتی که میفته به منوچهر شاه خبر میدن که سام داره به سمت کابل حرکت میکنه تا رودابه رو برای زال خاستگاری کنه منوچهر شاه حسابی عصبانی میشه و درباریاش رو احضار میکنه و میگه شنیدم که این پسر مرغپرورده سام میخواد با دختر محراب کابلی ازدواج کنه و بدون که این کار روزگار ما رو تباه میکنه چرا که با این پیوند محراب که زیر دست ماست دچار گردن فرازی میشه و فردا ادعاهای بزرگتری خواهد کرد و اگه زال و رودا به پسری هم به دنیا بیارن و اون پسر مثل پدرش و مثل پدر بزرگش پهلوان دلیری بشه و نژادش به سمت مادر کشیده بشه به دشمنی باما برمیخیزه میدونید که اونها از نژاد کن و بعد دیگه جمع و جور کردن این ماجرا بسیار سخت خواهد بود درباریام که معمولاً بله قربانگو هستند و هرچی پادشاه میگه تعیید و تحسین میکنن میگن بله احتمالاً همینطوره باید ترسید از این اتفاق منوشه شاه که میبینه درباریا هم با اون هم فکر رو هم نظرن میگه حالا باید یه فکر تازهی بکنیم بهترین کار هم اینه که بدون اینکه به روی خودمون بیاریم که از ماجرای زال و رودابه و ماجرای خاستگاری خبر داریم به سام دستور کشی به کابلستان رو بدیم و بگیم که باید به کابلستان حمله کنی و محراب رو هم از بین ببری بنابراین پسر خودش نوذر رو احزار میکنه و به اون فرمان میده که برو و در مسیر سام به کابلستان قرار بگیر و پیغام من رو بهش بده که باید به کابل لشکرکشی کنه نوذر هم با چند سوار به سوی گرگساران و مسیر حرکت لشکر سام به کابلستان حرکت میکنه در بین راه به سام میرسه و سام از دیدن پسر منوچه شاه بسیار خوشحال میشه از اون به گرمی استقبال میکنه و شروع میکنن به گفتگو کردن و از هر دری سخنی به میون میاد سرانجام نوزر پیغام پدرش منوچهر شاه رو به سام میده پهلوان هم که اینو شنید سپاه سپاهو آماده میکنه و به سمت منوچهر شاه حرکت میکنه وقتی به نزدیکی پایتخت میرسه منوچهر برای خوشامدگویی به سردار بزرگ و پیروزمندش سام به پهلوان به استقبالش میره با جشن و سرور و مارش نظامی و کوس و کرنا سام دلیر و لشکر پیروزش وارد میشن و سام سرفراز و پر افتغار به بارگاه منوچ اخشاه میله منوچ هم بهش میگه ای پهلوان بزرگ امشب رو به آسودگی استراحت کن ولی بدون که فردا باید به سمت کابل حرکت کنی و به اونجا لشگر کشی کنی و تا نسل مهراب کابلی رو از بین نبردی نباید آرون بگیری اون از نواده های زهاکه و همه می دونند که دشمنی ای با ایران و ایرانی داره پس برو و هر کاری که لازمه بکن تا مهراب کابلی رو نابود کنی سام با شنیدن این حرف در فکر فرو میره و بسیار اندوهگین میشه اما به روی خودش نمیاره چاره ای نداشت جز اینکه که فرمان برداری کن از فرمان شاه با دلی پر درد و سری پر فکر و آشوب منوچه شاه رو به درود میگه و به سمت محل استراحت یا سراپرده خودش میره تمام شب خواب به چشمان این پهلوان نمیاد از یک طرف از ستیزه جویی منوچهر ناخشنود و دلگیر بود از اون طرف نمیدونست به پسرش چی بگه و اگر بخواد به کابل حمله کنه و با مهراب به جنگه تکلیف ازدواج و عشق رودابه و زال چی میشه تکلیف پیمانی که با فرزندش بسته و گفته که هر آرزویی داشته باشی و هر ای از من داشته باشی برآورده میکنم چی میشه به حال چون باید مطیع پادشاه می بود فردا صبحش لشکرش رو به سوی کابل رهسپار سپار می کنه مهراب و زال هر دو از اینکه سپاه ایران به سمت کابل میان با خبر می شن مهراب از طریق ماموران و دیدبانهای خودش و زال هم از طریق خبرگزاران و نگهبانهای خودش مطلع میشه که سام و لشگری بزرگ داره به اون سمت میاد. زال، عصبانی و خشمگین سوار به اسب میشه و خروشان به سمت پدرش میره و پیش خودش اندیشه میکنه که حتی اگر ها بخواد به کابلستان نزدیک بشه و با نفس خودش اونجا رو بسوزونه باید اول از روی جنازه من رد بشه من اجازه نمیدم هیچ کس به کابلستان دست درازی کنه به تاخت میره تا به اردوگاه ایرانیان و سراپرده سام نریمان میرسه سام که فرزند خودش رو اونجا میبینه بسیار شگفت زده میشه نمیدونسته چه باید بگه و چه بکنه اما زاد بعد از اینکه به پدر درود میفرسته و ادای احترام میکنه شروع به صحبت میکنه که ای پهلوان بی همتا که در موقع نبرد دشمنانت رو در هم میکوبی ای که با دوستان مهربانی و دادگران رفتار میکنی چرا همیشه مهرت رو و محبتت رو از من دریغ میکنی اون موقعی که از مادر زاده شدم منو به دور انداختی منو به کوه فرستادی تا خوراک حیوانات وحشی و درنده بشم. اما خداوند به سی دستور داد که اون منو بزرگ کنه و پرورش بده. بعد که فهمیدی کار اشتباهی کردی اومدی و با من پیمان بستی که با من بدی نمی کنی و هر ای داشته باشم انجام میدی. اما حالا میخوای؟ جلوی پیوند و ازدواج من با عشقم رودابه رو بگیری آیا تو هم فکر میکنی که نژاد و تبار رودابه از نژاد و تبار ما پستره؟ تو به من پیغام میدی که میخوای به خاستگاری رودابه بیای اما با لشکری به سمت اینجا میای و قبلش به سراغ منو چهشاه میری با اون چاره اندیشی میکنی و تصمیم میگیری که به اینجا لشکرکشی کشی کنی پس بدون که همونطور که نیکی و درستی به رنگ مو بستگی نداره به نژاد و تبار هم نیست در که تو برای من از گورک‌سارام از پایتخت ایران آوردی لشکرکشی به کابله اما تا من هستم نمیگذارم کسی به کابل دست درازی کنه سپس جلوی پدرش زانو میزنه و میگه من رو با شمشیرت یا با اره به دو نیم کن اما صحبت از لشگرکشی به کابل نکن سام فهلوان که پسرش رو این طور خشمگین و ناراحت میبینه سخت بندیشه فرو میره یه میدونه باید به فرمان شاه عمل کنه و یا تسلیم مهر و محبت پدری بشه در نهایت پسرش رو از زمین بلند میکنه اون رو در آغوش میگیره میگه بره فرزندم تو درست میگی من هرچه که در گذشته برای تو کردم بیداد بوده و ستم پیمان شکستم و الان شرمندم اما تو میگی نشو زیرا بالاخره یه چارهای پیدا میکنم نامهی به منوشه شا می و از اون میخوام که خواسته تو رو قبول کنه و دست از لشکرکشی به کابل برداره زال از شنیدن این خبر و اینکه پدرش سعی میکنه بهش کمک کنه و راه ای پیدا کنه بسیار خوشحال میشه سام هم دبیر دربارش رو صدا میکنه و شروع میکنه به نوشتن نامی بلند بالا برای پادشاه ایران منوچهارشاه در این نامه مینویسه ای پادشاه از تو خواهشی دارم که امیدوارم اون رو برآورده کنی تو خودت میدونی که من برای این سرزمین چه فداکاری ها کردم مازندران و جادوگران گورگساران رو با گرز و گران در هم کوبیدم اجدهای رود کشف رو که سرتا سر گیتی از گزند اون به جون اومده بودن رو کشتم خلاصه کلی نت میذاره سر من چرشا که ال کردم و بل کردم و از رشادت ها و فداکاری های خودش میگه در نهایت میگه که من دیگه دارم پیر میشم موهای سرم سپید شده و پشتم رو به خمیدگی گذاشته و تنها امیدم در دنیا پسر پهلوانم زاله و اون آرزوی پسندیده ای داره آرزوی اون ازدواج و پیوند با رودابه دختر مهرابه. از تو میخوام که به پاس تمام خدماتی که برای تو و ایران انجام دادم با این خواسته موافقت کنی و دست از تیز برداری و اجازه بدی که لشکرکشی به کابل رو متوقف کنیم و من رو در برابر فرزندم پیمان شکن و سرشکسته نکنی. همراه این نامه زال رو به دربارت و به پیشگاه تو میفرستم تا با اون آشنا بشی و منتظرم که پاسخت رو هم به زال بدی تا به من برسونه زال هم بعد از اینکه نامه نوشته میشه سوار بر اسب میشه و پدرش رو بدرود میگه و با دلی پر امید به تاخت به سمت پای تخت ایران روونه میشه از طرف دیگه مهراب که از اردو زدن سپاه ایران در نزدیکی کابل آگاه میشه آشفته و خشمگین همسرش سیندخت رو فرا میخونه و به زنش میگه که ای زن اون چه که ازش بیم داشتیم به سرمون من. اومد تو بیهوده به سام نریمان خوشبین بودی و منم نیز امیدوار کردی الان ایرانیا با یک لشکر بزرگ دارن به سمت ما میان تا به دستور منوچه ارشا کابل رو با خاک یکسان کنند الان تنها راهی که وجود داره اینه که من سر رودابر از بدنش جدا کنم تا شاید منوچه شا آروم بگیره و این قضیه ازدواج زال رودابه هم ختم بشه و کابل در امان بمونه سیندخت از شنیدن این خبر سخت پریشون و نگران میشه و بعد از یک مقدار فکر به همسرش مهرب میگه ای فرمان روای کابل حالا بیا حرفای منو گوش کن بعد از شنیدن حرفهای من هر کاری خواستی بکن به نظر من سام رو میشه با گفتگو مشکلش رو حل کرد اجازه بده من به نزد سام برم هدایایی رو پیشکشش کنم و تا زمانی که من در حال مذاکره و صحبت با سامم تو هم قول بده که کاری به رودابه نداشته باشی این بار هم مهراب چاره اینه میبینه جز این که به صحبتها و به نصیحتهای همسر باهوش و زیرکش گوش کنه به مسئول خزانداری دربار دستور میده که هر چه که سیندخت لازم داره به عنوان پیشکش برای سام آماده کنید و بر پشت پیلان و شطران ببندید و به اردوگاه ایران بفرستید سین دختر هم لباس رزم می پوشه و کلاه خود رومی سر می و سوار به اسب می شه و به سمت اردوگاه سام حرکت میکنه هشت مرد سوار جنگی هم اونا همراهی میکنن تا پیشگشتا رو تقدیم سام کنه میرن و میرن و میرن تا میرسن به دشت پهناوری نزدیک کابل که سام در اونجا با سپاهیانش اردو زده بود به خبر میدند که یک فرستاده از کابل اومده و میخواد تو رو ببینه. سام پهلوان وقتی که فهمید زنی با کاروانی از هدایا داره میاد بسیار شگفت زده شد و به اون اجازه شرفیابی یا ورود به اردوگاه رو ده. سیندو اخت وقتی که به نزدیکی سام میرسه کلاه خود رو از سرش بر میداره و تعظیمی میکنه و میگه ای پهلوان بیگ همتا که کسی رو یارای مقابله با تو در کارزار نیست من برای آشتی به اینجا اومدم تا اندیشه نبرد رو از سر تو بیرون کنم چرا که یزدان پاک با ریختن خون بی گناهان همرای و هم داستان و موافق نیست ساام هم که از ته دل خواستار جنگ و ستیز نبود و بیشتر به پیوند زال و رودابه فکر میکرد گفت ای زن اول باید هر چه که به ازت میپرسم به درستی و روشنی و صداقت پاسخ بدی بعد در مورد جنگ یا با هم صحبت میکنی و از اونجا که نمیدونه که سیندخت همسر مهراب کابلی و مادر رودابه است میگه آیا تو این رودابه که دل فرزند منو برده و اون عاشق خودش کرده دیدی اون چه جور دختریه زین میگه قبل از اینکه پاسختو بدم ازت میخوام که به من امان بدی و پیمان ببندی که جانم در امانه پهلوان هم میگه باشه جانت در امان بگو ببینم زیندخت میگه درسته که من از نسل زحاکم و همسر محراب کابلی و مادر رودابه دختر من دختر بسیار زیبارویه پاک دامنه و پارسا و زیباییش زبادنزد همگانه ما می دونیم که تو پیوند زال و رو, رو نمی پسندی و منو چهرشاه هم با این پیوند هم داستان نیست اما بدون که ما تابع فرمان توییم اگر از خویشاوندی با ما که از نسل زهاکیم حاکیم ما نیز از این پیوند می گذاریم. یه اگر میگی که این دوتا دل داده نباید با هم جفت بشن؟ خب باشه ما هم میپذیریم پس جنگ و ریختن خون بیگناهان کار بیهوده ایه. سام که مردی بسیار دنیا دیده بود سیندخت رو زنی باهوش و روشن روان و رو با تدبیر دید از سخنان اون خوشش اومد و بهش گفت ای زن خردمند به کابل برو و شادان دل و تندرست باش و به محراب و سپاهیان شمرد و به کابل بگو که سام سپهبد در فکر اندیشه یه جنگ نیست من هم در باره پیوند زال و رودابه با شما هم نظر و هم داستانم ای به منو چه شاه نوشتم و اونو به زال دادم که ببره به پایتخت و نظر شاه رو جلب کنه تا اون با این ازدواج موافقت کنه و از جنگ صرف نظر کنه پس بهتر فعلا بری و به همسرتو تو به مردم کابل این خبر رو بدی که در امان هستند و جنگی در کار نیست سیندخت بسیار خوشحال و شادمان میشه از سام تشکر میکنه و هموندم به همراه سواراش به سمت کابل حرکت میکنه تا مژده این خبر خوب رو به مهراب، رودابه و مردم بده خب دوستان عزیز بخش دیگری از داستان زال و روداوه رو با هم شنیدیم و ادامه این داستان رو در برنامه‌های بعد تقدیم حضورتون خواهیم کرد امیدواریم که از شنیدن این داستان و مجموعه داستان‌های شاهنامه فردوسی لذت برده باشید و ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون بی‌نصیب نگذارید تا برنامه‌ای دیگر و داستانی دیگر همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم روز و روزگارتون به کام